أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلامه الأطيبين ولا سيما ببيت الله في الأراضين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. سلام عليك يا عمت ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوسی کم و نفسی به الله و ملازمه امره و مجانبه نحیه و تجهزو عباد الله فقد نودی فيكم بالرحيل رحیل و فإن خير الزاد التقوى همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به اندیشه در مرگ و احوال قبر و قیامت و نگاه به آخرت و کسب تقوی و آمادگی برای لقاء خدا سفارش و دعوت می کنم از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم همه ما را توفیق مجهز شدن به تقوای الهی و ذکر و شکر او در همه احوال انایت و کرامت بفرماید بحث ما در ادامه مباحث خانوادگی به تکالیفی بود که از لحاظ فقهی و اخلاقی برای کمک به جوانان در تشکیل خانواده در اسلام وارد شده است پس از آنکه به حقوق متقابل همسران و وظائف متقابل همسران در خانه پرداختیم وارد این مقوله و مبحث شدیم و ارز کردیم که در نگاه کلی اسلام تشکیل کانون خانواده و ازدواج به موقع نقش مهمی در سلامت فرد در همه ابعاد شخصیت او دارد و همینطور نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می کند و به این دلیل در آیات و روایات به مقوله خانواده توجه وافری شده است در روزگار ما این مقوله از اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که موج فرهنگ رفاه و فردگرایی غربی همراه با عوامل دیگری که در جامعه ما وجود دارد موجب تزلزل ارکان خانواده شده است و همین روزها انتشار آمار طلاق و رشد روزافزون طلاق نشانگر اهمیت این گونه مباحث و احتمام ملت و دولت و خانواده به مقوله خانواده است آمارهایی که در استانها نشان دهنده رشد طلاقه و حتی در استان ما که استان پیشگام انقلاب و ارزشهای الهی است محل عصب مشاهده رشد آمار طلاق هستیم حتما باید ما را تکان بدهد و همه اقشار جامعه و خانواده ها را در برابر رشد طلاق حساس خودانه ما یک جمله ساده ای میگویم که طلاق رشد پیدا کرده ولی هر یک طلاق یعنی ده ها مسئله اخلاقی اجتماعی و انواع آسیب هایی که متوجه جامعه و خانواده ها میشه از سوی دیگر باز آمارهای جدید نشانگر افزایش سن ازدواج هست تا اونجا که اگر درست باشه این آمار بسیار تکنده انده است. که قریب یک میلیون دختران ما از سن ازدواج کاملا عبور کردند و به حدود شهل و بالا رسیدند یعنی دیگه یهست از ازدواج این آمار اگر درستم نباشه اگر بخشی از آن هم درست باشه همه را واقعا دولت و ملت را به انجام تكاليف جدیتری فرا میخواند این آمارها همه نشان دهنده این است که اگر ما دها ده مشاوره بدهیم دها سخنرانی بکنیم دها ده برنامه درست طراحی بشه از سوی مسئولان و خانواده ها برای اینکه ازدواج به موقع انجام بگیرد و جوان از تأمین نیازهای عاطفی و روحی عقب نماند بجاست خب دیدیم که تاکید اسلام به طور عام این بوده اما در روزگار ما عناوین دیگری هم وجود داره که این وظیفه را می میکند از کردیم در خطبه های قبل که سه گروه مخاطب این خطابند وقتی که ما میگوییم باید دیگران کمک بکنند به اشکال مختلف برای اینکه ازدواج به موقع انجام بپذیرد این دیگران را میشه به سه گروه تقسیم کرد اول عموم جامعه یک تکلیف فقهی اخلاقی گاهی در مرتبه وجوب و گاهی در مرتبه استحباب متوجه اهاد جامعه است که و که حل ایام امنکم و صالحین من عبادتکم و امائکم این یک خطاب عام کفائی گاهی استحباب گاهی وجوب به آهاد جامعه است روایات و ادله دیگری هم بود که در دو خطبه گذشته پیرامون اون سخن گفتیم و نتیجه‌ای گرفتیم اینه که همه ما در حد توان و وسعمون در فرهنگ سازی ازدواج و کمک فرهنگی و اقتصادی برای انجام ازدواج برای بیوژه جوانان بر عهده ماست این یک محور و مخاطب اول این خطاب اخلاقی فقهی بود اما دومین مخاطب این خطاب الهی و دستور اسلامی برای تسهیل ازدواج و فراهم آوردن وسایل و مقدمات ازدواج به هنگام جوانان خانواده است طبیعی است که این خطاب با تأکید بیشتر متوجه نزدیکان به جوانان و خیشان و به بیژه خانواده آنها به پدر و مادر است پدر و مادر و خانواده در برابر جوانانشون تکالیف گوناگونی دارند که در آینده پیرامون آنها بس خواهیم کرد یکی از تکالیف مؤکد که بر دوش خانواده و به ویژه پدر و مادر قرار داده شده است تکلیف زمین سازی ازدواج درست و صحیح و به موقع و به هنگام است من در این مجال چند روایت از میان روایاتی که در این زمین خونده شده است ارز می کنم و قبل از اون اشاره میکنم که اون خطاب بسیار زیبای قرآنی که فرمود یا ای الیدین امنو قون و اهلیکم نارا اون یک خطاب عمومی است به خانواده میگه شما اعضای خانه در قبال یکدیگر موظفی که همدیگر را از عذاب الهی سیانت بکنید یعنی هرچی که لازمه برای این که فرد به سمت اطاعت خدا برود برای این که اعضای خانواده از معصیت دور شوند این تکلیف عمومی شماست این خطاب به خانواده است یا ایوهالدین آمنو قو انفسکم و اهدیکم نارا این آیه شریفی که وقتی نازل شد وقتی که نازل شد جمعی از مسلمانانی که این آیه را شنیدند به شدت در اضطراب قرار گرفتند و گریه کردند در برابر پیامبر خدا که این تکلیف سنگینی است ما هم خودمون را از عذاب نگه داریم سیانت از گناه بکنیم هم ما در برابر اهلمان این تکلیف داریم این تکلیف سنگینی است البته پیامبر خدا نقداری آسان کرد فرمودن گفتند که نه وظیفه شما این است که امر بکنید نهی بکنید زمین سازی بکنید برای اینکه فرزندان و خانواداتون در دامه های گناه قرار نگیرد اما در هر حال این آیه تکلیف مهمی را متوجه میکنه یک مثلاق اون اینه که وقتی که به سن ازدواج رسیدن و شرایط ازدواج فراهم شد کمک بکنه خانواده برای اینکه ازدواج درست و آسان و صحیح انجام بپذیرد اما روایات به طور خاص در اینجا چند روایتی که من تقدیم محضر شریفتون میکنم یک روایت در از کافی شریف نقش شده که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در یک روایت مفصلی فرمودن حقوق فرزند را بر پدر وقتی که تبین میکنن تا به اینجا میرسه که اگر فرزند دختر بود یعجل سراحه ها الى بیت زوجه ها دخترانتون که به سن مناسب ازدواج رسیدن با سرعت زمینه ازدواج اونها را فراهم کنید. این حد فرزند بر پدره در روایت دیگری باز رسول خدا فرمودند من حق الولد علی والده ثلاثه یحسن اسمه و يعلمه الكتابه و يزوجه اذا بلغ این مطلقم هست دختر و پسر را میگیره حق فرزندان شما بر شما پدران و اولیا چند چیز یکی این که نام نیکو برای آنها انتخاب بکنید نام های گویای ارزش های الهی برای فرزندانتون انتخاب بکنید دوم اینکه سواد به آنها بدید نوشتن و خواندن را به آنها آموزش بدهید و سوم اینکه که یزوه جهو وقتی که به بلوغ رسید به شرایط ازدواج داشت شرایط ازدواج برای او فراهم کنه خب و از این قبیر روایات بنابراین در روایات بالاتر از تعبیر وظیفه و تکلیف معمولی این تعبیر آمده که حق فرزندان شماست که شرایط ازدواج مناسب را برای آنها فراهم بکنید و در روایت دیگری آمده از منزو وجه بنتن توجه الله یوم القیام تاج الملک میگه کسی که فرزند خود را دختر خود را به هنگام به ازدواج درآورد و تدویش کند خداوند تاج پادشاهی و قدرت در قیامت بر سر او می نهد خب این آیه و این روایاتی که میگه شرایط ازدواج رو فراهم بکنید تا خانواده های به موقع و درست تشکیل شود از اون سمت قسم در روایت می فرماد اگر شما می توانستید و برای ازدواج فرزندانتون اقدام نکردید و فرزند شما در گناه و آلودگی قرار گرفت شما در گناه اون سهیم هستید حالا این دو روایتو نهای کنید من بلغ اینم باز از رسول خداست که فرمودن من بلغ ولدهن نکاح و اندهو مایون که حو فم احده تحدثن فالاسم علی یا در نسخه دیگر فل اسم بین اگر کسی فرزندش به سن ازدواج رسید. امکاناتی که به او کمک بکنه برای ازدواج از لحاظ مشاوره راهنمایی مسائل اقتصادی داشت ولی انجام نداد روایت می‌فرماد از رسول خداست که فل اسم و بعد او مبتلای به گناهی شد میگه شمایی که می توانستید. کمک بکنید ولی سهلنگاری کردید پشت گوش انداختیم میگه فل اسم علی میگه او هم در اون گناه شریکه این ملات عام میداره همه نسل جوان ما اگر به خاطر کوتاهی جامعه کوتاهی مسئولان کوتاهی خانواده در تسهیل امور ازدواج در اشتغال و مسکن و شرایط ازدواج اگر این جور شد و اونها در گناه قرار گرفتن همه اونهایی که توانستند در اون گناه شریکن این ملاک این روایت این دیگه و در روایت دیگری داره که پیامبر خدا فرمودند فتورات مکتوبون این قانون اسلامی است که ریشه در ادیان پیشین هم داشته است که کسی دختری که به سن ازدواج رسید اگر بتواند و به او کمک نکند برای ازدواج فعصابت اسمن فعصابت اسم و علی میگه گناه او بر شماست خانواده نسب بزرگ جامعه همه اونهایی که میتوانستند برای شک دادن به خانواده و ازدواج به موقع جوانان اقدام کنند و ترک کردن در آلودگی اجتماعی به گناه سهیمند اینها است که برای ما نقش شده این روایات این وظیفه را در این حد مشرد بزرگ شمارده که توجه الله یوم القیامه خدا تاج پادشاهی بر سرکستانی می که در ازدواج دیگران کمک کردن و ثباب و درجات برای انسانها به بار میاد و از اون طرف اگر انجام ندادیم در گناهان اون نسلی که مبتلای به آلودگی شدن شریک هستیم این بخشی از آیات و روایات مربوط مسئله بود نکات تکمیلی داره که الله در خطبه آینده بسم الله الرحمن الرحیم انا قائناک الكوفر فشل لربك والحر انا شانعه که هو العبتر صدق الله العلي العظیم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد صلى الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى صديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى امت المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر استادت العباد و اركان البلاد و ابواب الايمان و امناء الرحمن عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ابد الله اسيكم و نفسي وتقوا الله امير المؤمنان در ادامه اون فرازهاي زيباي در توصیه به تقوا در خطبه 191 بعد از این که فرمودن و داو به الاسقام با تقوا مرضهای خیش را معالجه کنید فرمودن علا و سنوها و تصو و نوبه ها تقوی گوهر پاک کننده است که امیر مؤمنان میفرماید هم تقوا را سیانت بکنید هم خودتان را با تقوی سه حفظ بکنید چیزی است که باید دائم اون را موازبت کرد تیرهای بلا و آماج پیامهای شیطانی مانع از ادامه تقوی میشه تقوی را حفظ کنید تا خود شما با تقوی از انواع آلودگی ها حفظ شدید و عن الدنيا نزاها و الى الاخره والله ها شما نسبت به دنیا تلاش کنید مسون دارید خودتون را تلاش کنید دل و جان خود را از ابتلای به دنیا و محبت دنیا حفظ کنید این کار دشواری است در سخن به راحتی می شود این ادا کرد اما در عمل بسیار دشواره کنو ان دنیا نزاهن و الى الاخرت بللاها خود را متوجه اون عالم بزرگ و آخرت وسیع کنید از دنیا دل ببرید و به آخرت بیندیشید و لا تدو من و را بزرگ بدارید انسان های اخلاقی و معنوی و ارزشی را تکریم کنید جایگاه رفی برای آنها قائل باشید ولا و ولا تدعو من رفعت خود تقوی. هم خود به تقوا مجهز شوید هم تقوا را ملاک عرضش گذاری انسانها در جامعه بدهید. خدایا به ما توفیق کسب تقوی و دوری از حواها و حوثهای نفسانی عنایت و کرامت بفرما یاد همه شهیدان و در و شهده این جمع و در از علماء و بزرگان و مراجع و امام شهدا و شهدای مدافع و شهدای مقاومت اسلامی و شهید مفتح و تندگویان را گرامی می داریم و تقدیم به ساحت آنها می کنیم بر محمد و آن محمد سال روز ورود بانوی کرامت و فضیلت بانوی مهاجرت بزرگ به قوم حضرت فاطمه محصوم سلام الله علیه ها را گرامی می و عرض عدب استپاس به پیش ده خداوند به خاطر این هدیه آسمانی داریم و تقدیم می‌کنیم به صاحب نورانی او سلواتی بر محمد و آل محمد از میان نکات و مناصبت سه نکته و موضوع را به حسوار و گزرا عرض میکنم اول هفته پجوهش هست ما پجوهش را با شرایط و زوابطی که دارد باید یکی از ارکان پیشرفت کشور در همه عباد مادی و معندی تلقی بکنیم و به فضل الهی در پرتوب انقلاب اسلامی ما گامهای بزرگی در رشد علمی و فنناوری برداشته ایم که در بعضی از بخشها دنیا را خیره کرده است اما در این حال همچنان ما در مسیر رشد علمی و پژوهش و فناوری نیازمند برداشتن گامهای بلندتری هستیم باید نگران باشیم اگر رشد مناسب تداوم پیدا نکنه یا خدای ناکرده در ابعادی ما به عقب برگردیم در اینجا من چند نکته را فهرستوار عرض می‌کنم یکی ضرورت توجه به سیاست های علم و پژوهشی است که رهبری معظم ابلاغ کردن و هدفگیری است که ما در 1404 به بودجه 4 درصد تولید ناخالص ملی در پجویش و تحقیق برسیم و با اون خیلی فاصله داریم پیش بینی های برنامه پنجم محقق نشد و این نگاه هم بسیار دشواره که با اون برسیم باید همه تلاش بکنن و الان ما حدود یک درصدیم. و باید با فاصله 7-8 سال دوسته درصد را طی بکنیم و برسیم به چهار ترصد تولید ناخالص ملی در امر پژوهش و فناوری تا جامعه ما مسیر رشد و تعالی را تی بکنه دو اینکه در لایحه بودجه که الان در مجلس مطرح هست انتظار میره که مجلس محترم به مقوله علم و پژوهش و فناوری و رشد علمی توجه بکنه که ما دچار رکود و توقف نشویم همانطور که انتظار میره در مقوله دفاع مقوله فرهنگ و فقر زدایی در بودجه انایت خاص بشه مردم ما و گروه‌های از مردم ما دچار مشکلات جدی هستند و فصل بودجه لیلت القدر برنامه کشور باید به اینها توجه بشه همین طور سه بخش خصوصی باید به مقوله تحقیق و پژوهش توجه بیش از وضع فعلی داشته باشه و چهار احتمام به پژوهش‌های بنیادی و تحقیقاتی که گره‌گشای کار ادارات و صنعت و برنامه‌ریزی کشور هست ضرورت داره پنجم حمایت از مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و نخبگان کشور تا مهاجرت نکنند از کشور ضرورت داره و نهایتاً حوضه و دانشگاه باید فرهنگ نوآوری، نظریه پردازی تولید علم و تهدید را هرچه بیشتر مورد انایت قرار بدهند امیدواریم که در هفته پجوهش همه مراکز به یه بازنگری بپردازند و همه احتمام ملی برای توسعه پژوهش را دنبال بکنند موضوع دوم مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه هست که از های بسیار کلیدی و راهبردی کشور. ما بسیاری از کشورها مون را در ترتب تعامل حوزه و دانشگاه به دست آوردیم. بسیاری از شکست ها به خاطر فاصله هایی است که میان نخبگان حوزه و دانشگاه پیدا میشه. اولا این همگرایی به تعامل نخبگانی و نهادهای حوزه و دانشگاه را باید یک اصل بسیار مهم راهبردی تلقی بکنیم. و همه به فکر آن باشیم که پایه های این تعامل و همفزایی را استوار بکنیم ثانیاً این وحدت وقتی محقق میشه که جامعه حوزوی و دانشگاهی ما از نگاه بلند تمدنی و اهداف بلند برخوردار باشه اهداف بلند جوامع علمی را متحد میکنه و در مسیر خدمت به مردم و انقلاب اسلامی قرار میدهد باید تلاش کرد از مرزهای دانش عبور کرد باید تلاش بکنیم ما نگاه جامعه علمی به همه رشده ها داشته باشیم و نهایتا دانشگاه اسلامی و ایمانی حوزه ناظره به زمان و بیدار اینها شرطهای تحتوق یک وحدت الهی برای حوضه و دانشگاه در خدمت به انقلاب اسلامی و جامعه ما هست که امیدواریم در این زمین همه همه ما احتمام روزافزون داشته باشیم و به شرایط یک وحدت متعالی در اهداف و آرمانهای بزرگ همه پایبند باشیم و موضوع سوم در حوادث منطقه مهمترین حادثه ای که اینجا باید بان اشاره کرد اعلام پایتختی قدس از سوی امریکا بود این اعلام بسیار زشت و خلاف همه موازینه بشری اسلامی و انسانی که توسط رئیس جمهور امریکا اعلام شد ما در برابر این در برابر این اقدام بسیار بسیار خطرناک که در واقع توهین آشکار به همه مسلمانان و به همه مقدسات اسلامی است که وظیفه داریم مقاومت بکنیم مقابله بکنیم همه ما همه امت اسلام همه دولت ها همه ملت ها در برابر این توطعه شون باید بایستند امروز هم ما در قم پایگاه علم و جهاد و انقلاب اسلامی و حوزه علمیه با صدای رسا این حرکت بسیار زشت و مذبوحانه را محکوم میکنیم و اعلام میکنیم وظیفه همه ایستادگی در برابر این توطعه بسیار خطرناک علیه اسلام و مقاومت و انقلاب اسلامی است دولت های اسلامی اگر راست میگویند اگر ذره ای غیرت اسلامی دارند همه دولت های اسلامی وظیفهشون این چند نکته ای است که عرض میکنم یک تعطیل استفارتخانه های اسرائیل در همه تخت های کشورهای مسلمانه این وظیفه همه دولت هاست قطع روابط سیاسی همه دولت های اسلامی با اسرائیل که معل اسف ما امروز شاهدیم که این روابط وجود داره دو تحریم اقتصادی و روابط و مبادلات تجاری با اسرائیل سه، حمایت از مبارزات فلسطین شما به جایین اینکه از پشت و امروز در آشکار خنجر به فلسطین بزنید آل سعودی که امروز مشغول این کار هستن خب اینها که تکلیفشون معلومه بایستی دیگران بیان مبارزات فلسطین را حمایت بکنن انتفاضه جدید باید راه بیفته و مقاومت باید مورد پشتیبانی قرار بگیره چهارم تشکیل کنفرانس اسلامی و اتخاذ موازع قاطع و روشن در برابر این حرکتی که به خیانت به همه امت اسلام پنجم اعتراض قوی در مجامعه بین الملل و سازمان بین الملل و شورای امنیته شما شو وزیفتون همه پنجم و پنج کشور اسلامی هستید دست به دست نه هم بدید در اعتراضتون رو بلند کنید ترس دارید اهل میدان جنگ نیستید باشه لعقل در سخن قاتل باشید موضع روشن بگیرید و همینطور ششم در برابر امریکا اقلن شما یک یادداشت اعتراض بدید سفیر امریکا را بایستی بلا فاصله در 50 کشور اسلامی به وزارت خارجه هاشون احضار میشد و تذکر قاتل می چرا این کار نشده؟ این وظیفه شما دولت های؟ جان مسلمان سایر دولت هم در برابر این ظلم با و وظیفه دیگر اینه که همه در برابر سعودی که امروز همه مرزها را شکسته باید بایستند. سعودی همین امروز وزیر خارجش اعلام کرد که ما یک نقشه راه برای روابط با اسرائیل داریم اینقدر شما پررو شدید اینقدر دنیای اسلام در خواب فرو رفته است که این خائنان به حرم و خائنان به مقدسات اسلامی در وقتی که داره به قبله اول مسلمانان توهین میشه دست دوستی دادن به اسرائیل این دست دوستی را اعلام میکنند این پدیده زشتی است که باید معالجه بشه ملت ها باید در صحنه حاضر باشند دولت هاشون وادار بکنن به این اقداماتی که گفته شد و دولت ما ملت ما به تأثیه به رهبری عظیم و انقلاب اسلامی حتما در این مسیر باید آتیه به ایستن همه با باید مواضع روشن خودون رو اعلام بکنیم و این ظلمی که امروز داره بر جهان اسلام و فلسطین میره ممانعت بکنیم امیدواریم که خداوند شر این دشمنان را به خودشون باز بگرداند اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و النیه و عرفان الحرمه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین منهم و خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما شر دشمنان و مستكبران عالم و اسرائیل را به خودشون باز بگردان به امت اسلام قوت و قدرت و شجاعت اقدام در برابر این همه مظالم انایت و کرامت بفرما خائنان به امت اسلام را مفتزه و منکوب بفرما خدمتگذاران به اسلام مراجع اضام رهبری معظم را معید و منصور بدار ارواح تابناک مؤمنین و مؤمنات در گزشتگان این جمع در, گزشتگان در از بزرگان و مراجعمان شهداي عالی قدرمان امام شهدا را با اولیاء خودت مشهور بفرما بر فرج حضرت عز و نافدا تعجيل بفرما بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان احد والسلام عليكم